کلینیک مشتریان مرکز تخصصی رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان مشتریان. .ir. این دوره آموزشی صوتی با همت آقای دکتر شفایی در کلینیک مشتریان تولید شده و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.